خون قباد پیر بر خاک مجد و عظمت ایران زمین می ریزد پیکر را از صحنه کاسیاب بارمان تورانی را پاداشی دیگه کننده می برشد و قارن خشبین بقزالود فریاد حمله سراسری سپاهیان ایران به صفوف دشمن را سر می دهد. و نبردی خونین بین دو سپاه آغاز می شود <تصفيق> گر سیوز بدنهاد فرماندهی سپاهیان توران را در این نبرد به عهده دار دو لشگر بسان دو دریای چین تو گفتی که شد جمب جنبان زمین بیامد دمان قارن رزم زن و آن روی گرسی پیلتن از آواز اسپان و گرد سپاه نخورشی تا وید روشن نما درخشیدن ما الماسکون شده لعل و آخار داده بخون به گردن درون همچو عبلی فراب که شنگه بارد بر اون آتان از ناله کوز شد مغز میخ پر از آب شنگرف شد جان تیل به هر سو که قارن برکند است همی تا آهن چه آزرگوشه است تو گفتی که الماس مرجان فشان چه مرجان که درکین همی جان فشان زقارن تو افراس یابان بدی بزد اسب و لشگر سوی او کشید یکی رز تا شب برآمد زکود بکردند و نامدن از که سطور. شب هنگام فرا می رسد و نخستین دور جنگ ایرانیان و تورانیان ناگزیر به پایان می رسد قارن سپاه خسته ایران را به سوی دهستان عقب کشیده و دیر هنگام شب به خیمه و خرگاه شاه نوزر شاه او را در میان بازوان خود میگیرد و هر دود در سوگ قباد پیر می گیرد. جو شب تیره شد قارن رسم خواه بیاورد پیش دهستان سپاه بره نوزر آمد به پرد سرای زخون برادر شده دلز جای و را دید نوزر آب از آن میشه سیر نادید خواب چون این گفت از مرگ سام سوار ندیدم روان را چنین سوک بار چه خرشید بادا روان خوبا تو را از این جهان جاودان به بار به پرورد و از مرگ من چاره نیست زمین را جز از گور گهباره نیست چنین گفت آرن تا آدم تن پرکنر مهد را داره فریدون نهاد این کله بر سرم که بارکین ایلت زمین بزبرم هنوز آن کمروان نکشادم همان تیغ پول آن ننهادم برادر شد آن مرد سنگو خرد سرانجام من هم بر این بگسرند انوشه بزید تو که روز جنگ به چنگندر آورد پول بزنگ شاست لشکرش گشت لختی تبا از آسودگان خواست چندی سپا مرا دید با گرزه گاوروی بیامد به نزدیک که من جنجور به رویش برانگونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم یکی جادوی ساخت با من به جنگ که با چشم روشن نماند آب و رنگ. شب آمد جهان سر به سر تیره گشت مرا بازو از کوفتن خیره گشت تو گفتی زمان سرایتم خا خاک در آغوش همین به بایست برگشتن است که گرد به بود و شب و سیاه یه شب همه جا را در بر گرفته است گویی ستارگان بر مرگ قباد پیر عشق میریزند سودوار و انتظار همه شب در اردوگاه ایرانیان چنین می و سرگاه خونین دیگری آغاز می شود. دور دوم نبرد نبرد نوزر و افراسیا نبرد قارن و گرسیدت رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان که افراسیان را بدید بزد کوس روین و صفت برکشید چنان شد گرد سواران جهان که خورشید گفتی شدن در نهان که حاده بر آمد زهرد و گروه بیابان نبود هیچ پیداز کوه برانسان سپه در خماه چون رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی راست ها فرو بیختی خون زگر بسیار کجا خواستی گرد افراسی همه خون شدی دشت چون رود آب سرانجام ز قلب سفا بیامد به نزدیک او راست ها چنان نیزه بر نیزه آویختند سنان یک به دیگر برا میختند که بر هم نپیچد بران گونه ما خوند را چنین کِی به وقت کاسافت پرنین با شب تیغ آمد به تن بر اون چیغه شد دست کی افتشاد و من نبرد ایرانیان با تورانیان با همه دلاوری های شاه نوزر با پیروزی تورانیان و افراسیاب همراه است بازیگردان تقدیر جنگ را به کام افراسیاب و تورانیان میخواهد نوزر کاری از پیش نمیبرد پس فرمان عقب نشینی میدهد بار دیگر شب فرا رسیده است. خواب به چشمان خسته نوزر نمی آید. پسرانش توس و گسته را فرا میخواند و از پند و آخرین دم زندگی پدرش منوچه ها سخن میگوید گوید. نوزر به پسرانش میگوید پدرم منوچه از حجوم تورانیان سخن گفته بود. اما چه کس می دانست چنین انبوهی از تورانیان و چینی ها بر ما تاختن خواهند آورد با این همه آن مرا پریشان می سازد این اندیشه شوم است که اگر همه بازماندگان فریدون و منوچهر در این نبرت ها کشت شبند بر سر تخت و تاج پادشاهی ایران چه خواهد آمد پس اینک هر دوی شما به سوی پارس بگرید و شبستان و خانوادی پادشاهی را برداشته به کوهای البرز و دور از دسترس تورانیان برید تا تو اگر من در این نبرد کشته شوم بازمانده ای از تبار فریدون برای تاج و تخت ایران باقی ماند دل نوزر از غم پر از درد بود که تاجش از اختر پر از گرد بود چو از درش بنشست آواز کوس بفرمود تا پیش او رفت توس بشد توس و گستهم با او به هم لبان ز باد و روان پرز غم بگفت این که در دل مرا درد چیست همی گفت چندی و چندی گریست از اندرز فرخ پدر یاد کرد پر از جگر لب پر از باد سر گفته بودم که از ترک چین سپاهی بیهاید به ایران زمین وزیشان ترها دل شود ده من مند سپاه به سپاه تو آید کزند ز گفته آرش آمد اکنون نشان فراز آمدن روز گردن کشند کس از نامی نامداران نخواهد که چندین سفه کست ترکان براد شما را سوی پارس باید شدن شبستان بیاوردن و آمدن و از آنجا کشیدن سوی راه به کوه بدان کوه الورس بردن گروه از ایدار به راه سپاهان روید و از این دشگر خیش پنهان روید زه تخم فریدون مگر یک دوتن برد جام از این بیشمارن ندانم که دیدار باشد جزی یکمشم بکوبی دست پسی گرفتان دو فرزند را در کنار فرو ریخت آب از موج شقیان بشد توس و گستحم نوزر به هم روخانشان پراغ و روانشان دوژم. <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> با حرکت توس و گستحم به سوی پاس پس از دو روز خاموشی صحنه‌های های نبرد دور دیگری از جنگ بین ایرانیان و تورانیان آغاز می شود. جنگ جویباری کوچک با دریایی خروشان. در این جنگ قارن سردار ایرانی خود درمیانه و قلب سپاه در کنار نوزر جای میگیرد و تلیمان گرد را بر چپ سپاه و شاپور دلاور و بزرگ را بر راست سپاه فرمان روا می سازد و بدینسان ایرانیان رو در روی سپاه دشمن ترکیب مخوف از تورانیان و چینی ها قرار میگیرد. و پس بیاسود لشکر روز. سنیگر چو بفروخت گیتی فروز نبود شاه را گوزگار نبر به بیچارگی جنگ بایست کرد خروشیدن آمد ز پرد سرها اما ناله بوغ و پندیگرها طبیره برآمد ز درگاه شاه نهادن بر سرز آهن کلا زمین کو تا کو بران با گوز گران نباد کو پیدا نریگ و نشخ ز دریا به دریا تشیدن نخ بیا راست قارن به قلبندرون که با شاه باشد سپه راستون شپ گرد تلیمان بخواست چو شاپور نستو بر دست راست ز شب دی تا خرز گردون بگشت نباد کو پیدا نه دریا نه دشت دل تیغ گفتی ببادت همین زمین زیر اصفان بنارد همین چو شد نیزه ها بر زمین سایدار شکستن در آمد سر ماگدار که آمد به بختن در اون تیرگی گرفتند ترکان برو چیزه بود بدان دانسو که شاکور نستوه بود پراکنده شد هرچه بود همین بود شاکور که کشته شد سر بخت ایران سپه گشته شد کشته شدن شاپور بزرگ فرمانده دست راست سپاه ایران قارن ناگزیر در برابر حملات سیلاسای سپاهیان دشمن به سپاهیان ایران فرمان می دهد تا درون حسارهای بلند دهستان عقب نشینی کرده راه سپاه سوار افراسیاب را بسته او را از پیشبی باز دارد زنبوه ترکان پرخاش جون به سوی دهستان نهادند دهستان گرفتند از ایشان حصار نه بسیار بود مر سپه را گذار شب و روز بود بر گذر جنگ برآمد بر این میز چندی بر چون وزر فروهش پیدر حصار بر او بسته شد راه جنگ ثواب با ایرانیان به برج و باروهای دهستان افراسیاب تصمیمشون می میگیرد او به سپه بود قراخان به سر ویسه سپه سالار لشکرش معموریت می دهند کمراه با سپاهیانش به شتاب راهی پارس شده خاندان پادشاهی ایران را اسیر کرده به صحنه کارزار بهستان بیاورند سپه بود قراخان ویسه به سوی پارس حرکت می و خبر حرکت او به قارن میرسد قارن که از نقشه اخیمنی افراسیاب آگاه شده است به شتاب به نزد نوزر شاه چو قارن شنودان که افراسیاب گسی کرد لشگر به هنگام خواب شد از رشک جوشان و دلکر تنگ بر نوزر آمد به سانه پلک. پورانشه آن ناجوان مرد مرد نگه کن که با شاه ایران چه کرد سوی روی سپاه سپاهی سپایی درستاد بی مرد را شبستان ما گرد به دست بر این نامداران شکست آورد. به ننگندران سرشبت ناپدید به دم قراخان به واید کشید قارن انگاه از پادشاه ایران اجازه می که برای نجات خاندان پادشاهی خود راهی پارس شد و به نوزر پیشنهاد می کند در دژ دهستان پایداری کند چه سپاهیان آماده جنبازی در راه او هستند و خوراک و آب آشامیدنی روان نیست بندازه کافی در دسترس هست تو را خوردنی هست هستو آب روان سپاهی به مهرست براتو نوان همی باش و دل را مکن هیچ بعد که از شهریاران دلیری سزد نوزر به غارن میگوید رفتن او درست نیست چون سپاهیان بدون فرمانده کاری از پیش نخواهند برد از سوی دیگر به او آگاهی می‌دهد که پسرانش را برای نجات شبستان پادشاهی راهی پارس کردن است به دو گفت نوزر این راه نیست سپاهیت چون لشگرها راهی نیست. ز بحر بونه رفت گستهم و به بدانگه که برخواست آبای کوس. به دین زودی هم در شبستان رسد. کند ساز ایشان چنان چون سزد. با که نوزر شاه به فرمانده سپاه خود، قارن آگاهی میدهد که شاهزادگان توس و گسته برای پاسداری از شبستان پادشاهی و زنان و فرزندان سرداران ایرانی به سوی پاس حرکت کردند با این همه قارن آرام و قرار نمی گیرند. او در بازگشت به خیمه خود با دلاوران سپاه ایران شیروی و کشفات خلوت کرده از خیال شوم افراسیاب سخن وان آگهی میدهد به نوذرشاه پیشنهاد کرده از در میان سپاهیان وفادار خود در حسار و دژ دهستان پایداری کند تا او شبانه از دژ دهستان خارج شده سپاه بد قراخان بیسره را از رسیدن به شبستان پادشاهی باز دارد قاران در این گردهمایی شبانه به دلاوران ایرانی می مرا سوی پاس باید کشی نباید بدین رای هیچ آرمید چو پوشید رویان ایران سپاه از ایران شبند از بدکشین خواه زن و زاده در بند ترکان شود؟ اوی جنگ دل پرزه پیکان شود چو به بدین درشت نیزه بدست چرا باشد آرام و جاگه نشست شیروی و کشواد؟ با پیشنهاد قارن همراه می شود قارن بران می شود شبانه با بخش کوچکی از سپاهیانش و به همراهی این دو سردار خط محاصری تورانیان را در اطراف دهستان بشکند و به سوی پارس حرکت کنند قارن میداند کشندی برادرش بارمان تورانی فرمانده است که دهستان را در محاصره دارد. و شیروی و کشواد و قارن به هم زدندن در این رای بر بیش و کم چون نیمی گذشت از شب دیریاز دلیران به رفتن گرفتن ساز فزان روی دز بارمان با سپاه عبا پیل و گردان نشسته براه راه از او قارن رعص زن خسته بود به خون برادر کمر بسته برایی چون شیر با بارمان سوی کار جستن نرادشت زمان یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکس است پیها و پیوند او سپه یک به یک دل شکسته شدن همه یک دیگر بسسته شدند. سپه بود سوی پارس به روی ابا نام بر لشگری جانجو. قارن پس از این یورش نابهنگام و کشتن سردار تورانی بارمان کشنده برادرش قباد به شتاب راهی پارس می شود. خبر حرکت قارن به سوی پارس به خیمه و خرگاه نوزر می رسد. پادشاه بخت برگشته ایران پند و سپارش قارن را که به او گفته بود در دهستان بمان و پایداری کن نادیده گرفته ترسیده به دنبال قارن راه گریز را از میان انبوه سپاهیان توران در پیش میگیرد افراسیاب با شنیدن اقدام شتاب زدی نوزر خود با سپاهیان ویجش سردرپی او گذاشته سرانجام او را در محاصره می گی. جنگی سخت و دهشتناک بین افراسیاب و نوزر شاه درگی پیشم چو <.pleasant> بشنید نوزر که قارن برفت دمان از پسش روی بنها تفت همی تاخت که از روز بد ببذرد سپهرش مگر زیر پی نسپرد چو افراسیاب آگهی یا که سوی بیابان نهاده است روی سپاه انجومن کرد و کویان برفت دمان از پس او همی تاخت کفت چو تنگندر آمد بر شخیار همش کاختندید و هم شب تیره تا شد بلند آفتاب همی گشت با نوزر افراسیان زگرد دلیران جهان تار شد سرانجام نوزر گرفتار شد خود و نامداران هزار و دویست تو گفتی کهشان بر زمین راه نیست بسی راه جستند و بگریختند به دام بلا هم درآریختند چنان لشکری را گرفته به بند بیاورد با شهریاری بلند <تصفيق> نوزر پادشاه ایران و یک هزار و سردار و مرد جنگی همراهش به دست افراس یا به خوندیز اسیر شده. چنین است روز کار. گاه بر تخت می نشاندد و گاه به زنجیر می کشاندد. این پند جاودانه فردوسی بزرگ است که هنوز از ورای قرون شنیده می شود. اگر با تو گردون نشیند براز هم از گردش او نیابی چواز همو تاج و تخت و بلندی دهد ده همو تیرگی و نژندی دهد به دشمن همی و هم به دوست گهی مغز یابی از اون گاه پوست سردگر بساید به عبر سیاه سرانجام خاک است از اون جا راسیاب خاشگین از شنیدن خبر کشته شدن بارمان سردار خود و گریختن قارن فرمانده سپاه ایران دستور می‌دهد همه جا او را جستجو کنند و پریشان به فرمانده بزرگ سپاهش ویسه میگوید قارن به دنبال پسر تو قراخان به سوی پارس حرکت کرده برای جان پسر تو در هراسم حس برای نجات جان او با سپاهیانت بیدرنگ حرکت و آن پس به فرمود افراسی که از قار و کوه و بیابان و آب بجویند تا قارن رزم زن رهایی نیابد از این انجام. چو بشنید کوپیش پیش از این رفته بود، ذکار شبستان برا بود چنین گفت با ویس پس نامبرد. دل ساخت گردان به مرگ پسر که چون قارن کاو جنگ آورد پلنگ از شتابش درنگ آورد. تو را رفت باید به پشت پسر یکی لشگری ساخته پرخونم بشد ویسه سالار توران سپاه عبالشگری نامبر کین خواهد از آن پیشتر تا به قارن رسید، گرامیش را کشته افکنده بود. دلیگان و گردان توران سپاه، بسی نیز با او فکنده راه درید درف شد، نگون سار کوز، چلال کفن روی چون سند روز. ویسه سپه سالار تورانیان دیر رسید. قارن چون گرگ خون‌آشامی که به گله گوسمندانی زده باشد قراخان بیسه و همه سپاهیانش را از دم تیغ گذرانده است قارن اینک در پاس است به او خبر میدهند که سپاهیان توران به سرکردگی بیسه به سوی او در حرکت هستند پس باشه تا از پارس بیرون آمده در دشت و هامون رو در روی سپاهیان توران قرار میگیرد ویسه خاشبین و پسر از دست داده برای شکستن روحی قارن و سپاهیانش باک بر می آورد که شاهیان اسیر افراسیاب است و قارن جایی برای گریز و رفتن ندارد ویسه به قارن رسید آگهی. که آمد به پیروزی و فرهی چون از پاس لشگر به هامون کشید ز دست چپش لشگر آمد پدید ز گردندر آمد درفش سیاه سپهدار ترکان به پیش سپاه. رده برکشیدن از هر درود برفتند گردان پرخاشجو. جور ز قلب سپاه ویسه آواز داد شک تا تخت بزرگی بباد ز قنوچ تا مرز کاول ستان. همان تادر بست و زاول ستان. همه سر به سر پاک در چنگ ماست برای ایوانه ها نقش نیرنگ ماست کجا یافت خواهی تا رامگاه از آن پس کجا شد گرفتار شاه چون این دا من قارنم گلی من در آب روان نفکنم نه بیم رفتم نه از گفتگوی به پیش پسرتا آمدم جنگ جون چو از چین او دل بپرداختم کنون چین و جنگ تو را ساختم و به در قلب ایران در دشت خای مرکزی ایران بین دو سپاه جنگ خونینی آغاز می شود چپ و راست گرد سیا نروی هوا ماند روشن نما. سپه یک به دیگر برامیدن چو رود روان خون همیریدن بر ویسه شد قارن راز جوی از او ویسه در جنگ برگاشت بود فراوان ز جنگ آوران شد و آور چون ویسه برگشته شد چو بر ویسه آمد از اختر شکن نرفت از پسش قارن رازم زن بشد ویسه تا پیش افراسیاب ز درد پسر میشه بود سپاهیان ویسه با دادن کشته بسیار از برابر قارن و سپاهیانش میگویند. شکست دیگری برای سردار دیگری از سرداران افراسیا اما هنوز دو سردار دیگر تورانی در قلمرو ایران در حال پیشروی هستند. آری خزران و شماساس به قلمرو زابلستان رسیدند. و آن هم در شرایطی که زال در گورابت سرگرم ساختن ستودان و دخمه و آرامگاه برای پدرش سام بزرگ است و در گیابو او مهرا پادشاه کابل و پدر همسرش رودابه در زابل جانشین اوست. مهرا با شنیدن خبر رسیدن سپاهیان توران به هیرمند رود، فرستادهی برای شماساس و خذبران سرداران تورانی فرستاده با آنها پیام می دهد. آماده است بدون مقاومت زابل را به تورانیان و افراسیاب تسلیم کنند. چون او از بازماندگان زهاک است و از ایرانیان و سام و زال فراوان کینه در دل دارد و برای نجات جان خیش تن به خیشاوندی بان انها داده است استادی محراب به شتاب خود را به اردوگاه تورانیان و به نزد شماساس و خذبران می‌رساند به پیش سراپرده آمد فرو ز مهرب دادش فراوان درو بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه ز زهاک ما مارا نژاد بدین دین پادشاهینی هم سخت شاد به پیوستگی جان خریدم همین آن نیست چاره ندیدم همین کنون این سرای نشست من است همه زاولستان به دست من است در چو دستان بشد سوگبار ز بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینم شو زمان خواهم از نامبر پهلوان بدان تا فرستم هیونی دوان یکی مرد بینادل نادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیا مگر که نحان من آگه خبرد سخنهای گویند کوتاه شود. نساری فرستم چنان چون سزاست جزا نیست هرچ از در پادشاهست. است اون که گوید به نزد من آی جز از پیش تختش نباشم به پا همه پادشاهی سپارم به دود همین چه دارم به تن پهلوانان ندارم برنج ترستم هر گونه آو چند اما حقیقت آن است مهراب با فرستادن این پیام و هدایا برای شماساس و خضبران آنها را فریب داده زمان خریده است تا بتواند زال را از مصیبت و بلایی که به نزدیک هیرمند رود رسیده است آگاه کند و از او بخواهد که به شتاب خود را به زابل برساند از این سر دل پهلوانان ببست و از آن سر سوی چاره یازی دست نوندی برف کند نزدیک سا پرنده پر شد، باز کن پر روبار. به دستان بگویان چه دیدی کار، بگویش که از آمدن سر مخار. که دو پهلوان آمدی در به جنگ سه ترکان سپاهی چو دشتی پلند چلش گشن بود بر هیرمند به دینارشان پای کردن ببند اگر ز آمدن دمزن یک زمان برایت همی کامه بدگمان. رستاد پیام محراب را به زال میرساند و زال به شتاب همراه با سپاهیانش به سوی زابل حرکت می‌کند. سوی گود محراب، اینها روی همی با جان جو <متحن> چو به را پای بر جای دید به سرشندرون دانش و رای دید به دل گفت کاچنون ز چه, چه پیشم خزرون چه یک مشت خاک <متحن> به محراب گفت ای خوشی مرد پسندیده باید همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم به دیشان بخون. شبند آگه از من که باز آمدم دل آکنده و کینه ساز آمدم. زال به شتاب بازگشته است. و در همان شب بازگشت بران می شود تا با پرتاب تیرهای سهتگین خود، به اردوگاه دشمن که هر کدام درخت تنومندی را میماند دل و روان آنها را از ترس لبریز کند کمانی به بازود درفکن سخت یک تیر برسان نرد درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بیانداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن دار و گیر <تصحيح> توشبروز گشت انجمان شد سفا. بدان تیر کردن هرکس نگاه گفتند این تیر زال است و بس نراند چنین در کمان تیر کست کماساس گفت هر بنیز به نیز نکردی نرم گردن به چیز نه محراب من نه مشکر نه جنج نه بودی بدین روز رنج خزفران چنین گفت چین یک تنست نه حیمنست و نه از است، تو از جنگ و دلمداری چنگ هرانگه که آرم من رو را بچن. تماساس با دیدن تیرهای زال خزبران را سرزنش می کند که فریب هدایای محراب را خورده است خزبران به او دلداری می که زال از سنگ آهن نیست و در صحنه کارزال بر او چیره خواهد شد سرانجام خورشید طلوع می کند و کابوس شبانه تورانیان به حقیقت رودر رویی با زال تبدیل می شد. و سپاه رو در روی هم قرار می گیرند و خزران دلاور تورانی به جنگ زال میروند که خورشید تابان ز گنبت بگش خروش تبیره برآمد زدند به شهرندرون کوس با کرنای خوشیدن زنگ و هندی درها برآمد سپاه را به هامون کشید سراپرده پرده و پیل بیرون کشید سپاهنده را راورد پیش سپاه شد از دور خامون چو کوهی سیار از دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد برمبر بر روشنش گسسته شدان نام بر جوشنش شد تاخت شاهزا بلستان برفتند گردان کاه بلستان یکی گبر خوشید زال دلی به جنگ آمد به کردارشی به دستندرون داشت گرزه پدر سرش گشت خشم و پرخون جگر بزد بر سرش گرزه رنگ زمین شد دخون همچو پشت پله آری خذبران در ستیز با کشته می شود زال پس از کشتن خذبران خاستار نبرد با شماساس می شود. اما شماساس از نبرد بازال حراسیده در میان سپاه خود پنهان می شود و سردار دیگر تورانی گلباد به جنگ زالی می شماساس را خاص خاگد برون نیامد برون چش نجوشید خون به گردن درون یا گلباد را به گردن براورد پولار چو شمشیر زن گرز دستان بدید همین کرد از او ناپدی، ناپدید را بزه کرد زال سبار خدنگی بدو دوگند در راند خا، بزد بر کمربند گلباد بر آن بند زنجیر پولاد بر نیانش عبا پوحه زین بدو سپه را به گلباد بر دل بسد. این دو کنده شد در نبرد شماساس شد دیدل و روزا شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پسندر در دلیران ایران برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس پشت آوردگاه که گفتید جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه فرکان نهادند سر، بشاد سلیح و بسست کمه. شماس و باقی سپاهیان تار و مار تورانیان به شتاب از برابر سپاهیان زالگریخ. شکستهای پی در پی سپاه توران در داخل مرزهای ایران و کشته شدن بسیاری سرداران تورانی خشم افراسیاب دیو سیرت را چنان برمیانگیزد انگیزد که بی ترس و واهمه از خداوند دست به جنایت پلید و زشت دیگری میزند. زند برای پادشاهی بر قلب ایران زمین با کابوس حراسناک مقاومت دل ایران ایران همراه شده است او در تب و قدرت به ننگ بزرگی تندر میدهد سوی شاه ترکان رسید آگهی که از آن نامداران جهان شد توهی دلش گشت پر آتش از درد و قم درخ را به خون جگر داد نم برا شفت و گفتا نظر کجاست؟ تسو س خواهد همین قاز؟